این داستان سپر کرکس روزی روزگاری پادشاهی بر تخت بیماری افتاده بود چنان که پزشکای زیادی بر بالینش حاضر شدند ولی هیچ کدوم نتونستن اون رو معالجه کنند فقط پزشک پیری بود که با تجربه خودش فهمید که رمز و راز شفای پادشاه توی پر کرکسه پادشاه خوشحال از اینکه که سرانجام دوایی برای بیماریش پیدا شده از پزشک پیر سراغ کرکس رو گرفت. پزشک گفت در سرزمین های دور پشت رودخونه ها و جنگل ها کوه سر به فلک کشیده که در قله اون هفت حفره وجود داره. کرکس تو یکی از این حفرهها زندگی میکنه. ولی مسئله مهم اینه که اگر پای کسی به اونجا برسه مثل یک دونه گندم توی منقار کرکس گرفتار میشه. پادشاه اعلام کرد حاضر نیمی از دارایی خودش رو به کسی بده که پر کرکس رو برای اون بیاره. ولی چه کسی حاضر بود دست از جونش بشوره و داوطلب انجام چنین کار خطرناکی بشه؟ بعد از مدت‌ها که کسی داوطلب انجام این کار نشد، یکی از مهترای جوون از پادشاه تقاضا کرد دستور بده تا اسب و تدارکات لازم سفر مهیا بشه و اون هرچه زودتر توی این راه پر مخاطره و مهم گام بذاره. محتر جوون بامداد سوار بر اسب تیز رو از قصر بیرون رفت و غروب آفتاب به مهمون خونه تو هاشی جنگل رسید. اسبش رو کنار استبل بست. سر و صورتی داد و با مهمون خوندار از هر دری حرف زد. از بیماری پادشاه، موجزه پر کرکس کوه بلندی که کرکس توی اون لونه داشت و از اینکه که اومده بود تا پر کرکس رو که مثل آب حیات شفا بخشه با خودش ببره. مهمون خوندار شجاعت مهتر رو ستود و گفت بسیار خوشحالم که به اینجا آمدی. زیرا من هم مثل پادشاه به یک پر کرکس نیاز دارم میدونی دختر من سالها پیش گم شده حکیمی گفت چنان چه پره کرکس رو به دست بیارم میتونم دخترم رو دوباره ببینم اگر به اونجا رسیدی دختر من رو هم فراموش نکن مطمئن باش که پاداش ارزنده ای بهت میدم جوون گفت احتمالا این کار رو هم میکنم به شرط اینکه راه رو پیدا کنم. مهمون خونه دار گفت تو حتما راه رو به راحتی پیدا میکنی. دقت کن که راه رو مستقیما در دل جنگل دنبال کنی. در پشت جنگل رودخونه یه که به روی اون کلک کوچیکی قرار داره. از اون به بعد کلکران نمایید میکنه. جوون پس از استراحتی دو روزه به راهش ادامه داد. سهرگاهان مهمون خونه رو ترک کرد و هنگام شب به نزدیکی کلک رسید و از کلکران خواست تا اون رو به اون سوی رودخونه ببره کلکران پرسید ای جوان این گونه با شتاب دنبال چه کاری داری میری جوان هدف از سفر دور و دراز خودش رو برای آوردن پر کرکس رو تعریف کرد کلکران ادامه داد تو رو به اون سی رودخونه میبرم به شرط اینکه یک پر کرکس رو هم برای من بیاری و از اون پرنده بلند پرواز بپرسی که کی از شر کلک و کلکرانی خلاص میشم جوون گفت قول میدم اگر دستم به اون بالا برسه پریم برای تو بیارم و پاسخ سوالت رو هم بگیرم دعا کن راه رو پیدا کنم و به خواسته هم برسم کلکران از اون خواست شب رو در منزلش بمونه و فردا صبح به همراهش به اون سوی رودخونه بره. جوان خسته و کوفته از سفر با سپاسگزاری از کلکران در اونجا بیتوته کرد و پس از صرف شام خوابید. صبح که شد کلکران همونطور که قول داده بود جوان رو به اون سوی رودخونه برد به ساحل رسند و بعد از خداحافظی سفارش مهمی به اون کرد. اون گفت اون کوه بلند رو می بینی؟ خوب دقت کن که هفتا حفره داره که کرکس در بالاترین حفره زندگی میکنه فراموش نکن که حتما هنگام ظهر به اونجا برسید چون که توی اون وقت اون در پرواز و توی خونه نیست وگرنه گرنه توی چشم به هم زدن تو رو با منقار قوی خودش مثل دونه گندم خورد میکنه ولی اگر در وقت مناسب به اونجا برسی سالم میمونی در که زدی خدمتکارش در رو به رود باز میکنه از هیچ کمکی هم دریغ نمیکنه مهتر جوون با تشکر از کلکران بر اسب سوار شد رفت نزدیکی های ظهر به دامنه کوه رسید و اسب خودش رو به درختی درختای جنگل بست. ظهر که شد و خورشید به وسط آسمون اومد با ترس و لرز داخل حفره هفتم شد. ابتدا همه جا براش تیره و تار بود ولی به مرور زمان تاریکی جای خودش رو به روشنایی داد و به دروازه ای رسید. جسورانه در رو کوبید. در باز شد و کنار در دختری مثل قرص ماه ظاهر شد. دختر از زده پرسید تو کی و اینجا چی کار میکنی؟ مگه نمیدونی که اینجا مسکن و معوای کرکسه؟ اصلا فکر کردی که اگر کرکس تو رو ببینه مثل دونه گندم قرطت میده؟ جوان بر خودش مسلط شد و گفت میدونم که کرکس تو اینجا زندگی میکنه من برای حل مشکل ست تا انسان درمانده و گرفتار به این سفر پرخطر گام گذاشتم. میدونی میخوام ست تا از پرهای سهرامیز کرکس رو با خودم ببرم چون شنیدم که این پرها مشکل هستند اون وقت نشست و توضیح داد که به دنبال کسب چه اطلاعاتی از کرکسه و اونها که به پر کرکس نیازمند هستند چه کسایی هستند دختر با شنیدن حرفای جوون قول داد هر کاری از دستش برمیاد انجام بده در مقابل از اون خواست کمک کنه تا از چنگال کرکس رها بشه. جوون هم سوگند خورد که در راه آزادی دختر از جونش بگذره و دستورهای اون رو اجرا کنه. بعد دختر گفت تو رو زیر تخت پنهون میکنم. اگر توی اونجا ساکت و آروم دراز بکشی و بی سر و صدا بخوابی، خطری تو رو تهدید نمیکنه. وقتی اون رو سوال پیش می کنم و پرها رو به تو میدم حواست رو کاملا جمع کن به محض اون که مهتر جوون در زیر تخت پنهون شد صدایی وحشتناک شبیه طوفان به گوش رسید در باز شد و کرکسی پیکر به زمین نشست با چشمای غضبناک اطراف رو نگاه کرد و گفت بوی گوشت انسان به مشامم می خوره، آب تو دهنم جمع شده اون جوون خودش رو کجا پنهون کرده تا امشب اون رو نوشه جون کنم. دختر دیگه غذا رو روی میز گذاشت. کرکس رو آروم کرد و گفت منظورت کیه؟ من که اینجا کسی رو نمیبینم. نکنه خیالاتی شدی؟ شاید هم از گرسنگی گیج شدی و برای غذا هزیون میگی. کرکس تمام سوراخ زنبه ها رو زیر و رو کرد ولی به عقلش نرسید زیر تخت رو نگاه کنه. بنابراین دست از پادراز تر سر میز نشست و مشغول خوردن شد بعد از اون که حسابی سیر شد سرش رو بر پای دختر گذاشت و به خواب رفت دختر که در انتظار همچین فرصتی لحظه شماری می کرد تند و تیز پر اول را از اون جدا کرد و به زیر تخت جایی که مهتر جوون پنهون شده بود انداخت کرکس از خواب پرید و فریاد زد چه کار میکنی دختر؟ چرا پرهام رو میکنی؟ دختر گفت، عصبانی نشو، کرکس عزیز، مسئله مهمی نیست. من توی خواب بودم و خوابای آشفته دیدم. خواب کلکرانی رو بر روی رودخونه میدیدم که برای یک لغم نون شب و روز خلائق رو از این سوی رودخونه به اون سو می اونقدر قمگین و آشفته حال بود که دل عالم و آدم به حالش آتیش میگرفت. کرکس گفت این که خواب نیست این یه واقعیته. میدونی کلکران زمانی از شر کلک نجات پیدا میکنه که صاحب یکی از پرهای من بشه. فهمیدی؟ حالا بذار بخوابم. دختر در انتظار نشست تا کرکس دوباره به خواب عمیقی فرو رفت. تو اون لحظه پر دیگه از اون کندو زیر تخت اندا. سلطان آسمان ها دوباره بیدار شد و گفت امروز چت شده دختر؟ تو که تمام پرای منو کندی؟ دختر گفت خواب مهمون خونداری رو دیدم که دخترش رو گم کرده بود و هیچ راهی برای حل مشکلش پیدا نمیکرد. به این علت بسیار غمگین و پریشون حال بود. این خواب قلب و روح منو به درد آورده. کرکست در جوابش گفت کجای این مطلب خوابه؟ بهت میگم که مهمون خوندار هیچ وقت دخترش رو نمیبینه. مگر اینکه یکی از پرهای منو صاحب بشه و سنگ آستانه در خونش رو از این رو به اون رو کنه. مطمئن باش که در این صورت دختر خودش رو میبینه. حالا بزار بخوابم. دختر دختر اونقدر در انتظار نشست تا چشم کرکس حسابی به خواب رفت. اون وقت سومین پر رو کند و به زیر تخت انداخت کرکس با عصبانیت از خواب بیدار شد و فریاد کشید امروز چه کار داری دختر؟ تو میخوای تمام پرای منو بکنی و منو بیچاره کنی؟ دختر گفت معذرت میخوام کرکس عزیز این سومین باری که خواب میبینم خوابی بسیار وحشتناک که از وحشت اون از خواب میپرم و مثل بید میلرزم بعد آهسته و آرون برای کرکس تعریف کرد گفت خواب پادشاهی مریض رو دیدم که همه پزشکای دنیا در معالجه اون ناتوان موندند کرکس گفت تو همیشه به این مطالب اسم خواب میذاری. ولی اینا حقیقتند فراموش نکن که پادشاه هیچ وقت سلامتی خودش رو پیدا نمیکنه این اینکه یکی از پرهای منو داشته باشه و اون رو به خودش بماله در این صورت مطمئن باش که تا آخر عمر بیمار نمیشه دیگه بذار بخوابم دختر ساکت مون تا کرکس بخواب ره. وقت صبح صبحونه رو آماده کرد و تا دم در بدر قش کرد با به پرواز اومدن کرکس توی آسمون بلند و لاجوردی جوون خوشحال و خندون از مخفیگاه خودش بیرون اومد دختر بهش گفت حالا که هرچی خاستی خواستی رو به دست آوردی و جواب سوالات رو هم گرفتی به سرعت از اینجا برو و خودت رو از مهلکه نجات بده جوون گفت میرم ولی فقط با تو، من به تو قول دادم که نجاتت بدم و حالا هم سر قولم هستم دختر گفت، تنها برو، نشنیدی که کس چی گفت اگر به حرفای اون عمل کنی، مطمئنا به همدیگه میرسیم جوان با سرعت از کوه پایین اومد صبح زود بر پشت اسبش نشست و وقت ظهر به رودخونه رسید کلکران چشم راه و منتظر با دیدن مهتر جوون از اون سراغ پر کرکس رو گرفت و ازش پرسید آیا از کرکس سوال کردی که راه خلاصی از شر این کلک چیه؟ جوون گفت بله، ولی بله اول کار و تلاش، بعد مزد و پاداش. هر وقت منو به اون سوی رودخونه بردی، نسخه خلاصی رو بهت میدم. جوون اون سوی رودخونه در کنار ساحل از کلک پیاده شد، روی اسبش نشست و به کلکران گفت اگر دوست داری برای همیشه از دست کلک نجات پیدا کنی کرایه مسافر رو در بین راه بگیر و پیش از اون از کلک پیاده نشو دقت کن که اگر این کار را نکنی تا عبد کلک و کلکرانی به تو خواهد بود جوان مثل برق و باد دور شد و هنگام شب به مهمون مهمونخونه حاشیه جنگل رسید مهمون خونه که شب و روز انتظار جوون رو میکشید از پر کرکس سوال کرد جوون اون رو به اون نشون داد و گفت اگر میخوای دخترت رو دوباره ببینی کلنگی بردار و سنگ آستانه درت رو زیر و رو کن مهمون خونه فوراً کلنگی برداشت نوکش رو زیر سنگ آستانه در گذاشت و سنگ رو برگردند. یک باره دختر در برابر چشمای پدرش ظاهر شد، همون دختری که خدمتگزار کرکس بود. مهمون خونه دار که از شادی عشق شوق توی چشماش جمع شده بود به جوان گفت اگر دوست داری میتونم اون رو به همسری تو در بیارم و مهمون خونه رو هم به تو ببخشم. چه پاداشی بهتر از این؟ جوون با گذاری از مهمون خونه دار صبح زود مهمون خونه را ترک کرد دختر را بدرود گفت و به راهش ادامه داد تا هنگام ظهر به قصر پادشاه رسید پادشاه که با بی سبری چشم به راه نشسته بود با دیدن مهتر جوون از اون پرسید که آیا پرکرکس رو با خودش آورده یا نه جوون گفت: بله ای پادشاه عزیز، پر کرکس رو به شما تقدیم میکنم. دقت کنید که پر رو به تمام بدنتون بمالید تا از این طریق سلامتی خودتون رو تضمین کنید. پادشاه پر رو گرفت و به توصیه جوون اون رو به بدنش مالید. یک بار مثل ماهی شناور توی اقیانوس سالم و بانشات به رقص در اومد. جوون رو صدا کرد و از اون خواست تا هرچی که میخواد طلب کنه. جوون خوشحال و سرافراز از اینکه تونسته بود با انسان دوستی و شجاعت دردها و گرفتاریهای مردم از پادشاه گرفته تا مهمون دار و کلکران رو رفت کنه از پادشاه سپاسگزاری کرد و گفت ای پادشاه بزرگ تنها و تنها یه خواهش دارم. و اون اینی که اجازه مرخصی به من بدید باید بهتون بگم که نامزد من در انتظارم لحظه شماری میکنه پادشاه صندوقی پر از طلا و جواهرات به مهتر جوان داد و با آرزوی موفقیت برای اون اجازه رفتن داد جوون به مهمون خونه برگشت. جشن عروسی اون و دختر مهمون خونه دار سه روز و سه شب به درازا کشید. جشنی که در حقیقت جشن پاداش نیکوکاری مهتر جوون بود. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها